سلام میکنم خدمت شنوندگان کانال تلگرامی هزار های افثان. داستانهای ای صوتی با کتاب افسانه های اوکراین در خدمتون هستم داستانی را از این کتاب بهتون تقدیم میکنم از بخش سوم قصه های اخلاقی اسم داستان هست گنج و زن پرحرف مردی به نام پترو زنی به نام حسکا داشت اون دو همدیگر رو بسیار دوست داشتند. و از زندگی ساده و پا محبت خودشون راضی بودن. تنها چیزی که پترو را آزار می‌داد و به خاطر اون دست همسرش گریل داشت این بود که هوسکا بسیار پرحرف بود و نمیتونست و واقعاً نمی‌تونست هیچ رازی رو تو دل خودش نگه داره. اون به این خصلت شهرت داشت و هرچه چه پترو اون رو نصیحت می‌کرد و از اهمیت کم حرفی و خوبی‌های رازداری به اون می هیچ اثری تو رفتار رو گفته رو زن نداشت. پترو تو زمین کشاورزی اربابش کار میکرد و آخر سال دست میگرفت و زندگی میکرد. روزی هنگام شخم زدن زمین ناگهان بیل پترو به چیزی سخت گیر کرد و پترو نتونست اونجا رو بشکافه. پس دوربر اون رو خالی کرد و متوجه شد که کوزه ای تو دل خاک پنهان شده. و وقتی کاملا اون رو بیرون آورد و خاکی روی اون رو پاک و درش رو باز کرد هزاران سکه طلا در اون دید اول فکر خواب می‌بینه. به صورت خودش سیلی محکمی زد که از خواب بیدار بشه اما نه اون بیدار بود و بعد از عمری زحمت و زندگی ساده روستایی واقعا به گنجینهی بسیار بسیار گرامبه ها دست پیدا کرده بود اون حتی نمیتونست تخمیم بزنه که به های اون سکه های قدیمی و عتیقه چقدره. تلاش کرد احساساتش رو کنترل کنه تا هیچ کسی به خصوص و از اون راز مهم خبردار نشه. اما مشکل اصلی همسرش بود که نمیتونست و واقعا نمیتونست رازی به این مهمی و منحصر به فردی رو تو دل خودش نگه و به هیچ کس نگه. پسرو همیشه درباره اون اون میگفت. اگه رازی رو به حسکا بگید از دو حال بیرون نیست یا این راز انقدر برای اون بیهمیت که به همه خواهد گفت یا انقدر برای اون مهمه که حیفش میاد به دیگران نگه اون روز پترو بیشتر از روزهای دیگه تو کشزار موند و شب هنگام آروم و بی سر و صدا کوزه رو در پارچه پیچید و به خونه برگشت و کوزه رو گوشه دنجی طوری که حوسکا متوجه نشه پنهان کرد. اون روز با خودش قرار گذاشته بود که چون نصیحت حوسکا فایدهای نداره باید به شکل عملی به اون بفهمونه که رازداری خوب و پرحرفی بد. اون شب درباره گنج سخنی به زنش نگفت. روز بعد به بازار رفت و ابتدا یک خرگوش و سپس چند کیلو نان حلقهی خرید و به طرف رودخونه رفت. با تور چند ماهی سید کرد، ماهی ها رو برداشت و به جای اون خرگوش گذاشت. به جنگل رفت و ماهی ها زیر بوته، و علف پنهان کرد و نان حلقه ای رو به شاخه های درخت های گلابی آویزون کرد. و بعد از این کارهای عجیب و غریب به خونه برگشت. اون روز بعد از اون که ناهار خوبی خوردن پترو به حسکا گفت از بیو با هم بریم از جنگل کمی ماهی بگیریم حسکا خندید و فکر شوهرش داره باش شوخی میکنه اما وقتی اسرار و جدیت اون رو دید گفت حتما دیوونه شدی مگه ماهی رو تو جنگل میگیرم پترو گفت بله تو جنگل اتفاقی افتاد و ماهی فراوون اونجا پیدا میشه باور نکرد اما چون بود از چیزهای مهم و عجیب و غریب خوشش می اومد همراه شوهرش به جنگل رفت پس رو اون رو به جای برد که اون روز صبح ماهی ها رو پنهون کرده بود به حسکا گفت نگفتم امروز جنگل پر از ماهیه حالا بیا اونها رو جمع کنیم حسکا فریاد زد وای خدای من این معجزه است ماهی تو جنگل چه کسی این رو باور میکنه پترو و زنش ماهی ها رو جمع کردند و تو سبت ریختن. اون وقت پترو به حسکا گفت حالا بریم کنار رودخونه ببینیم تو تور ماهیگیری خرگوش گرفتار شده یا نه؟ حسکا تعجب کرد و از حرف عجیب شوهرش خندید و اون رو مسخره کرد. اما پترو بسیار جدی بهش گفت مگه تو جنگل ماهی نگرفتیم؟ حالا باید بریم و با تور ماهیگیری خرگوش بگیریم. اونها به سمت رودخونه می رفتند که ناگنهان پوسکا فریازد وای پترو، پترو ببین چی شده؟ درخت های گلابی پر از نون های شده. خدای امروز چه اتفاقی افتاده؟ این هم موجزه ایه. پترو زنش به طرف درخت رفتند و نون های رو جمع کردند و در سبدی دیگری ریختند. چشم های زنش شگفتی گرد شد و دهانش باز مونده بود. پترو گفت، فکر میکنم، ابر نان حلقه ای از اینجا عبور کرد و این نانها رو روی شاخه درخت ریخته. حالا بریم سراغ تور ماهیگیری. به رودخونه رسیدند و حسکا دید داخل تور ماهیگیری خرگوشی بزرگ سید شده. اون نمیتونست اون پدیده های العاده رو باور کنه. پترو گفت، خب خسته شدیم، بهتر تا شب نشده به خونه برگردیم. اون شب زن به شوهرش گفت چه روز عجیبی بود چه موجزه ها دیدم که هرگز نمیتونم اونها رو باور کنم پترو گفت عزیزم زمین ها مهم نیست موجزه اصلی اینه که من امروز گنج پیدا کردم کوزه ای پر از سکه های تلا کوزه ها هاج و واج مونده بود و فکر میکرد داره خواب میبینه اما وقتی پترو بیرون رفت و کوزه را آورد و جلوی اون گذاشت ناگهان کوزه میخواست جیغ بکشه. شوهرش جلی دهنش رو گرفت و گفت آرون باش عزیزم اگه کسی از این راز بود ببره به خصوص اگه ارباب بفهمه این گنج رو عمون میگیره چون اونو تو زمین ارباب پیدا کردم عزیزم تو این بار باید و باید و باید رازدار باشی و درباره این گنج ذرهی به کسی چیزی نگی هر زدن تو همانا بدبخشدن من همان فهمیدی؟ تو نباید درباره ماهی و خرگوش و نونه حلقه هم چیزی بگی. میفهمی هووسگاه هووسگاه در حالی که به هزاران سکه طلا خیره شده بود و درست نمیدونست شوهرشی میگه آب دهنشو به سختی قرت داد و گفت باشه، مطمئن باش که هیچ کس درباره این چیزا سخنی از من نمیشنوه. این راز بی ارزش نیست که من بروم به همه بگم. اونها گرم گفتگو بودن که در بیرون خونه از کوچه سر و صدای فراوونی به گوش رسید. خوزکا شوهرش پرسید چه خبره؟ چرا مردم اقصد سر صدا می پس گفت ارباب از روستای نزدیکمون دوزی کرد و حالا دارن اون رو کوچه به کوچه می گردونن. تا همه بفهمن که در این همه سال چه ارباب دوزی داشتیم. خوزکا تا قد و بلند شد که بره بیرون. شوارش پرسید کجا میری. هوسکا گفت میرم به دوستام خبر بدم که ارباب دزدی و دارن رو دارن رو تنبیه میکنن. شوهرش گفت: نه، تو نباید این کارو بکنی اگه ارباب بفهمه که تو درباره در اون خبر چینی کردی ما رو بیچاره میکنن عزیزم. تو قول دادی رازدار بشی. آیا به همین زودی قول و پیمونت رو فراموش کردی؟ چند شبانه روز گذشت و حوسگاه هرگاه میخواست پا از خونه بیرون بذاره به یاد حرفای شوهرش میافتاد. و از رفتن خودداری میکرد. اما روز چهارم دیگه نتونست جلو خودش رو بگیره. از خونه بیرون رفت و تمام آنچه چه دیده و شنیده بود، به به‌خصوص درباره کوزه پر از تکاهی طلا که شوهرش پیدا کرده بود، به دوست صمیمیش گفت. و از اون قول گرفت که اون رو با کسی در میان نگذاره. او هم قول داد، اما تا غروب اون روز تمام مردم روستا به ویژه ارباب خبردار شده بودند. که پترو به گنج دستیافته و سروتمند و خوشبخ شده. خبر مثل توب در تمام ده پیچید. اولین کسی که به این خبر بسیار حساس شد و اکسال عمل نشان داد، ارباب بود که دستور داد پترو و همسرش حسکا پیشش برند و درباره گنج حرف بزنن پترو با حسکا دعوای شدیدی کرد و گفت دیدی نتونستی راز نگهدار باشی؟ دیدی زندگی ما رو تباه کردی؟ الان ارباب تمام گنج رو از دستمون بیرون میکشه ای زنه پر حرف وقتی اون دو نزد ارباب رفتن ارباب نخوست از پترو پرسید که آیا درست است که میگوین اون گنج پیدا کرده پترو انکار کرد و گفت هیچ گنجی پیدا نکرده و اینا همه شایعه مردمی بیکاره ارباب گفت همه میگن زنه تو ها گشته و خبر داده پترو گفت زن من دیوونه است و نمیدونه چی میگه شما جدی نگیرید. اوسکا عصبانی شد و فریاد زد دیوانه توی پترو من راست میگم. اون به گنج دست پیدا کرده و میخواد اون رو پنهان کنه. من دروغگو نیستم دیوانه هم نیستم. ارباب خوشحال شد و لبخند پیروز مندانه ای زد اما پترو خونسردی خودش رو حفظ کرد و گفت ارباب جان از اسوسکا بپرسید چه روزی شوهرت گنج رو پیدا کرد؟ ارباب اسوسکا پرسید و اون گفت راست میگویم همون روزی که با هم در جنگل ماهی گرفتیم پترو دیگه چی بازم بگو همان روزی که با تور ماهیگیری از رودخونه خرگوش سید کردیم از شاخه های درخت گلابی نان حلقهای چیدی. باز هم فکر میکنی من دروغ میگم پترو این بار لبخند پیروز ای به لب آورد و گفت ارباب جان ببینید حرفای او چقدر غیر منطقی و دیوانهواره آی چیزی که این زن میگه ممکن اتفاق بیفته لطفا ازش بپرسید. اون روز که من گنج رو پیدا کردم دقیقاً چه اتفاقی افتاده بود ارباب پرسید اوسکا بیشتر بگو دقیقاً چه اتفاقی افتاده بود من که پاک گیج شدم اوسکا گفت ارباب جان ببخشید اما همان روزی که شما از ارباب ده نزدیک دزدی کرده بودید و مردم شما رو کوچه به کوچه می بردند و پو میکردن تا دیگه دست به دزدی نزنید. ارباب از شدت خشم آتیش گرفت. رنگش سرخ و صدایش دورگه شد و از شدت خشم فریاد زد. زن دیوانه خودت میدونی داری چی میگی؟ من و دزدی اون هم از ارباب ده نزدی. خدمت خدمتکاران این زن احمق و ببرید و اونقدر بزنید تا عقلش برگرد و حرفای پوچ نزنه. حوسکا تعجب کرد و پترو با درمیانی کرد و گفت ارباب جان ببخشید حوسکا قصد بدی نداشت اون این روزها حالش خوب نیست و حرفای عجیب و غریبی میزنه که باعث دردسر برای خودشو و من و مردم ده شده میترسم همین روزو پاک دیوونه بشه اون رو ببخشید ارباب خواهش میکنم اون رو ببخشید ارواب که فکر میکرد هوسکا واقعا دیوانه است اون رو بخشید و به زن و شوهر اجازه داد که به خونشون برگردن همین که به خونه رسیدن هوسکا گریه سرداد و به شوهرش گفت تو آبروی منو بردی تو منو دیوونه لقب دادی چرا این کارو با من کردی چرا پتر اون رو تو آغوش گرفت و گفت خواستم یک بار برای همیشه به تو ثابت کنم که پرحرفی بده رازداری خوبه باید تمرین کنی و کوشی رازدار باشی تو زن خوبی هستی و من دوستت دارم. بیا از امشب رازداری رو به خوبی های اضافه کنی. خلاصه اونها هنوز که هنوز دارم با گنج خودشون زندگی میکنن. زندگی شاهانه و خوبی هم دارن. این راز بین من و شما بمونه. به کسی نگی نه. سفر به دنیای پر رمز و راز افسانه ها